شنیده بودم که یک ایستگاه مترو نزدیکی های میدان آزادی هست که دست بر غذا نزدیکترین ایستگاه به قلعه مرغی هم همان بود به حسن گفتم که شاید دوست داشته باشم با مترو بروم قبول نکرد میگفت راهمان دورتر میشود اما چون من از ته دل میخواستم با مترو بروم دنبال سرم راه افتاد برای اینکه فکر نکند زورش کرده ام توی راه در مورد فرهنگ حمل و نقل عمومی و مصرف بنزین مفصل براش صحبت کردم. از میدان آزادی تا خود مترو را پیاده گز کردیم. بود با ماشین می رفتیم. چون اقل کمش سه رو ساعت تا ایستگاه راه بود. من هم که کف دستم را بونه کرده بودم که ایستگاه آزادی تا خود میدان آن همه فاصله دارد. جدا هر اسمی بهش می غیر از همین یکی. توی راه پله های مترو داشتم پله برقی کار میگذاشتند. از یکی از کارگرها پرسیدم که پله برقی دقیقاً کی راه می‌افتاد. دیدم یارو چینی از کار درآمد. بیشتر از این است که یارو چشم بادامی بود و زبان آدمی‌زا سرش نمیشد وگرنه یعنی هیچ بعید نبود که ژاپنی یا ویتنامی چیزی بوده باشد. از یک ایرانی هم که پرسیدم اعصاب نداشت جواب سربالا بالا به هم داد. اما آن پله‌هایی که من دیدم حالا حالاها کارش کار داشت. آدرس را که پرسیدیم به بهمان گفتند وضعیتمان طوری است که باید ایستگاه آخر پیاده شویم. در مورد ایستگاه آخر رو دست نخوردیم، اما چون از بد روزگار قطار را اشتباهی سوار شده بودیم نزدیکی های تهران پارس فرود آمدیم. قطار را عوض کردیم و از سر نو برگشتیم. باورتان نمی شود که همه این کارها را فقط با یک بریت کردیم. اگر تا نصف شب هم همانجا میلوولیدیم کسی نمیآد بگوید خرد به چند. تا قبل از ایستگاه امام خمینی همه چیز خوب بود اما تازه آنجا حساب کار دستم آمد که اصلا هر ایستگاه قلقه خاص خودش را دارد درها باز شده نشده ملت افتادن به جان هم. فشار بود که به هم میدادند. از آن طرف در حل میدادند، از این طرفش چون درهای قطار هم خیلی سریع بسته میشد، احتمالش ضعیف بود که هر یک از دو طرف بخواهند کوتاه بیایند یک پیرزن خیلی قدیمی کنار دست خودم بود که هر جور حساب کنید باید به یک نوایی میرسید. جای پیرزنه حتی برای وایسادن خشک و خالی هم خوب نبود. قیافش حال آدم را میگرفت. پیرزنه را میگویم. قیافش حال آدم را میگرفت. داشت ازش میرفت. دهنش نیمه بسته بود و چانش به صورت متناوب میلرزید. شبیه آدم هایی که از یک چیز پیش پا افتاده خیلی تعجب کرده باشند. یک عینک کاوچویی هم داشت که با کش تنبان به کلش محکم کرده بود. زبان بسته چادرش رو هم از دو جا توی شاده سبز دور کمرش تپانده بود آدمهایی توی آنسن همه چیزشان رو به یک ترفندی به خودشان میچسبانند که حداقل از نظر مالی زیاد آسیب نبینند دلم مدام برایش میسوخت. به هزار زحمت خودم را یکی دو نفر جابجا کردند تا بهش رسیدم روی صندلی کناریش یک سرباز اشقور خودش را به خواب زده بود صداش زدم سرباز میبخشید خبری نشد تیمسار، سرتیب، خوشتیب یا صدام رو نمی یا چی که باز جوابم رو نداد مجبوری با کف کفشم چنان زربهی به کشککش کش زدم که نگفتنی درست همون جایی زدم که آن دکتر گروهی ناکس میزد. کم کمش نیم متر پرید بالا گفتم خسته نباشی سرهنگ میشه جاتو تو با مادرم عوض کنی سواب زیاد داره، خیلی پیره بلند شو. هنوز در شک زربهی بود که به زانوش نباخته بودم. چی؟ ایشون مادرمه به سندلیت خیلی احتیاج داره پیره پیره بنده خدا بدون اینکه کار رو به هر گونه درگیری فیزیکی بکشاند خودش بلند شد اگر کسی در شرایط عادی جاش را به پیروپاتال ها ندهد چیز خیلی بدی نیست ولی اگر در فاصله نیم متری از آدم چونی درخواستی بکنند باید خیلی ناکس باشد که قبول نکنند گفتم بفرما بشی مادر جان. این خیالش نبود باز گفتم مادرجان بلندش کردم بشین صندلی واسه شماست نها گفت نه نه شک ندارم که داشت صدام رو میشنید ولی به احتمال دوی زورش به جواب دادن نمیرسید هیچ باید نبود اگر بخواهد جوابم را با صدای بلند بدهد همانجور وایستادنی از دار دنیا برود از تنها چیزی که در آن لحظه مطمئن بودم این بود که برای پیر زنها نشستن از ایستادن خیلی بهتر است. روی همین اصل دستش را گرفتم و به زور روی صندلی نشاندم. بگوی یک دعایی، نفرینی لبخندی، هیچ؟ غیر از او آدمهای دیگری هم بودند که از نظر زیست شناسی شرایط نشستن را داشتند، اما من دیگر به هیچ وجه علاقه به تکرار این کار نداشتم. بگذاری تا یادم نرفته یک قضیه خندهدار هم برایتان تعریف کنم قوطیای یک رقم وشایی را توی یک قاب پلاستیکی یک متر به یک متر از میلهه کرده بودند کار از این مزخرفتر نباید اجازه بدهند هر کسی به اسم تبلیغات بند و بساتش را سیخکی از میله های مترو آویزان کند. فکرش رو بکنید که کسی بخواهد با همین روش یخچال و تلویزیون و اینها تبلیغ کند. یا مثلا لباس زیری چیزی؟ آن وقت چه؟ میله مترو میشود چوب رختی. به شورت و زیر پوش ملت که نمیشود چنگ زد. آخرهای مسیر کمی نور به داخل تابید که فرق زیادی هم نکرد قطار داشت آرام آرام می‌ایستاد که خانم محترمی توی بلنگو گفت مسافران محترم ایستگاه پایانی می باشد. لطفا بعد از توقف کامل هرچه چه سریع‌تر قطار را ترک نمایید چونان گفت هرچه چه سریع‌تر که لابد خیال می کرد آن دخمه چه آش دهن‌سوزی است که آدم بخواهد توش اوتراح کند این بود که تصمیم گرفتن تا آخر آخرش همان تو به اما بعد که چراخ ها خاموش شد از ترس هم پریدم پایین حسن آدرس به دست مثل این دهاتیایی هایی که اولین دفعه دارن شهر را میبینند داشت در دیوار را میپایید تازه آنجا بود که برای اولین بار در تمام عمرم دلم براش سوخت. داشت همه این بدبختی ها را به خاطر من تحمل میکرد به خدا اگر شما هم توی آن لحظه حسن را از پشت میدیدید دلتان براش کباب میشد. با جگر خون وایستادم نگاه کردن حسن اما هنوز عشق داره چشمام حلقه نزده بود چند قدمی رفتید که من نیستم برگشت چرا نمیای پس؟ دارم نیگات میکنم چی؟ بیچی